من یه زن حامله در آستانی چهل سالگی که بچهشم نخواسته بوده شوهری داره که سرطان ریه داره که ساعتها قیبش میزنه و نمیدونم کجا میره به سورم با هم حرف میزنه به اضافه یه پسر دمدمی مزاج و حساب پانچی که ترگشیده و اون آبگرم کنی که اینقدر زدگی داره که افتضاحه و داره کف کمود و وسایل رو میپوسونه و پولشم نداریم که تعمیرش کنیم